بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنج و هفته قواعد فقه و سیاسم محسی آموزشالی امام بزا علیه السلام حشت قرداده 1401 بسم الله الرحمن الرحیم لله رب العالمین الله و سیدنا و, سیدن و نبینا عبدالقاف محمد بحلو اهل بیت تاهرین المعصومین سی مابقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا در دو قوائدی که در بحث اخیر داشتیم از یک طرف مقوله مصلحت نفس مطرح شد از یک طرف مصلحت ارز مطرح شد خب ما میتوانیم بحث مصادیق ارز رو هم با یکدیگر در تنافی یک جایی ببینیم مصلحت نفس با نفس هم خب طبیعتا ما می توانیم داشته باشیم تضاحم در واقع مصلحت تضاحم میکنه مصلحت حفظ نفسی با مصلحت حفظ نفس دیگه اینجا میشه بگیم تقدیم در واقع مصلحت نفس اعلا بگیم یا مصلحت دیگه ای ما در نظر بگیریم مسلحت نفس با مسلحت ارز یا با مسلحت دین تنافی میکنه خب اینا رو مروری کردیم از یک طرف میتوانیم صحبت از تقدیم مسلحت اعلا بکنیم در بین دو نفس تقدیم در واقع مسلحت نفس بگیم برتر داره‌ای نداریم اینکه در, در, در واقع در واقع تزاهم میان حفظ دو نفس مقتضی ترجیح یکی از دو نفس بر دیگری است خب اینجا ما چی می توانیم بگیم ما می توانیم بگیم که نفس برتر نفس ارزشمندتر اینجا باید ترجیح پیدا بکنه مصادیق مختلف میتوانه در میان افراد عادی داشته باشه در واقع مسلحت حالا یک مستاق مادر رو گفتیم از زاویه بحث تزاهان و نسب گفتیم ولی این زاویه مستقلی میتوانه باشه ترجیح بگیم خلاصه نفس مادر جان مادر بر جان طفل شیرخار شیرخوار نگیم اون جانی که در به صورت جنینه بر جان جنین این یک مورد خب ترجیح این رایجی بود که جلسه قبل صحبت کردیم دراش طبیعتاً دمد در این هم فتاوای مختلفی هست با لحاظ اهم و مهم اینجا ترجیح جان مادر عنوان نفس اهمتر حفظ جان مادر خلاصه سیانتش بر حفظ جان جنین ترجیح داره ولو این که خلاصه جان اگر جانی نداشته باشه در فرضی که جنین دارای روح نیست ترجیح مزبور خلاصه روشنه اما در مواردی که در فرضی که جنین دارای روح باشه مزقه باشه علاقه باشه برای اینها بریم مراتب بالاتر باز هم ترجیح ظاهراً خلاصه ظاهراً یه جوری متفقون علیه باشه در فرض های دیگه بستگی داره که ما بگیم چه کسی محترم از یک پیشفرضی هم ما داریم پیشفرض اینه که ترجیح در بین روح چه کسی است در میان به جان چه کسی است اینی که مسادیق تزاهوم رو در نظر که میگیریم تزاهوم نفس با نفس حفظ جان در واقع نفس با نفس دیگه یک مورد برجسته اینه که نفس محترمه می توانه بر نفس غیر محترم تقدیم پیدا بکنه. بلکه باید چون که اصلا همین پیشفرض خلاصه بحث ما اینه که یکی محترمه که غیر محترم غیر محترم بودن نفس در واقع یک نفس مقتضی چیه؟ مقتضی عدم لزوم حفظ اون است و به تعبیر دیگه می می توان گفت که اصلا اینجا تضاهمی نیست. تقدیم نفس حفظ جان نفس محترم بر غیر محترم اصلا از باب تضاهم خارجه. چرا که در واقع حفظ جان غیر محترم وجوبی نداره در حالی که نفس محترم حفظ جانش حفظ جان محترم نفس محترمه خلاصه وجوب داره اما اون جایی که هر دو احترام دارن در فرض تزاهم حفظ دو نفس محترم میار چی میتوانه باشه؟ طبعا احترام آن دو اقتضا میکنه که اکثر احتراماً میار قرار بگیره میار ترجیح بر اساس میزان احترام اون دو باشه. نکته سوم چیه؟ در فرض برابری احترام و حرمت شرعی دو نفس دو یا چند نفس محترمه میتوان حکم به تغییر کرد. چرا چون وجه ترجیح ندارند مگر اون که خلاصه و در واقع حکم تأخیر به چه معناست این که چرا که از این جهت از جهت احترام میزان احترام هیچ یک در دیگری برتری ندارد تا بتوان تقدیم حفظ اون رو اهم انگاشت مگر اون که ما خلاصه و ترجیح از منظر دیگه خلاصه جای ترح داشته باشه یعنی چی به طور نمونه مثلا یکیش زودتره دسترسی ما بیشتره به طور نمونه امکان حفظ یکی بیش از امکان حفظ دیگری باشه خب اینا یا خلاصه بگیم یا حفظ یکی سرقت بر حفظ دیگری داشته باشه در این صورت هم در واقع ممکنه بگیم ترجیح زمانی خلاصه مقتضی اینه حفظ حفظ جان محترمه یکی خلاص ترجیح داره چرا؟ چون که سبقت زمانی داره ترجیح زمانی مقتضیه حفظ است که در واقع امکان حفظ اون از جهت زمانی جلوتره از جهت زمانی سبقت داره این بطور نمونه بود خب بیتر نمونه یکیش چی بود؟ این که امکان حفظ جان بیشتر باشه مورد دیگه حفظش تقدم رتبی داشته باشه اه. یا مثلا بگیم حفظ یکی حالا مقوله بدل رو در اینجا نمیتوانیم بیاریم ولی قدرت شرعی یکی حفظ یکی اه. قدرت درش به نحوه شرعی باشه یکیش عقلی باشه تقدیم قدرت عقلی در حفظ یکی بر قدرت در واقع شرعی در دیگری به چه مانو؟ مثلا بگیم فرض مثلا اگر حفظ جان انسان ها عموم انسان ها از سنخ خلاصه قدرت در اونها اقلی باشه اگر قدرت چرا چون که یک واجبی داریم قدرت برای حفظ جان عموم انسان ها عقلی است حالا این اقلی بودن و شرعی بودن معانی داره حداقل سه معنا رو در نظر می توان داشت که مرحوم اطلاع خویی در نظر دارن شش دارن یه معنای قدرت اینه که قدرت تکوینی باشه اون یکی قدرتش تکوینی نباشه حالا در عالم اثبات یا در عالم صوط منات این قدرت اگر در منات دخیل باشه این میشه قدرت شرعی اما اگه در منات نباشه، در استیفا باشه در انتصال باشه. اگر این باشه این مورد قدرت تکوینی مقابل قدرت غیر تکبینی یه موردم این که، قدرت در واقع ما مبتلا باشیم به امتصال یکی واجب دیگه ای که شهر گردن ما گذاشته مثل نظر محضر شرعی داشته باشیم خب یکی دیگه قدرت به این صورت نباشه شرط هر قدرتی هر فعلی اینه که به واجب اهم یا واجب مساوی این خلاصه مشغول نباشه پس قدرت به چه معنا بود؟ این حالا جز اون بحثای خلاصه مقدماتی در اصل بحث امتصال معانی قدرت در باب تزاهم یک معنا قدرت حد در واقع قدرت عقلی و شرعی اینجا وجود داره قدرت عقلی در باب تزاهم خلاصه میتونه حداقل به سه معنا باشه یکی چی قدرت تکوینی دو عدم اشتغال اشتغال ذمه به واجب دیگر سه عدم اشتغال عملی واجب اهم یا مساوی این رو اگر بخواید بحث شهی صد رو متعلق کنید من همه طول خوبی به بیجه بحث شهی صد از اینجا شروع می خب این حالا یه بحث مهمی است که باید مد نظر داشته باشیم در بحث ما پس اینجا بود در بحث نفس محترمه پیشفرز هایی داریم یه پیشفرز این بود که نفس محترمه باید بر نفس غیر محترمه خلاصه تر ترجیح داشته باشه و حفظ نفس محترمه باید مقدم شود و ترجیح دارد خب اینجا ترجیحش خب معلومه اون غیر محترمه در اون جایی که این پیش دوم چی بود دو نفس محترمان اقتضا میکنه که میار ترجیح بر اساس میزان احترام باشه در نتیجه نفس اکثر و احترامن ترجیح داره سیانت از نفس اکثر و احترامند از نفس محترمتر این خلاصه ای ترجیح داره برچی بر نفسی که ترجیح بر نفس با احترام کمتره شر این رو پذیرفته سیانت از نفس محترمتر نزد شر بر سیانت از نفس با احترام کمتر ترجیح شرعی دارد این ها یه پیشفرزه اونجایی که برابر باشند پیشفرزه سوم چیه؟ تخییره در احترام برابر این هم یک پیشفرض خلاصی بحث ف... پیشفرض چهارم چی بود ای این که معیارهای دیگه از جمله اون معیارهای اصولی مهم در اینجا میتوانه بیا ای تر امکان امکان یا ضرورت ترجیح با معیارهای غیر اهمیت و احترام حالا در اینجا بحث چیه؟ احترام و اکثر اهمیت در, در جایی که در مواردی که احترام هر دو نفس برابر است اما برابر است و در این حال میارهای ترجیح دیگر در میان است میتواند خلاصه یکی رو در دیگری مقدم دارند، اون میارها خلاصه بر تغییر تقدم دارند، تقدم خواهند داشت چرا؟ چونکه این رافی اون نبود، از این جهت برابر بود. چرا که برابری در واقع احترام ناف به اختزای خاصی داره اختزای تخییر داره اما ضرورت تخییر رو ایجاب نمیکنه بلکه زمینه رو برای برای نقش آفرینی دیگر معیارها و شاخص ها برای ترجیح باز می گذاره اینجا میدان رو نمی بنده خب بنابراین خلاصه امکان در موارد مزبوری که ما گفتیم امکان ترجیح امکان یا ضرورت ترجیح از طرق مزبور وجود داره مثل چی؟ امکان حفظه یکی بیش از امکان حفظه دیگری باشه هر دو مح... نفس محترم هم نفسشان هم برابره دو تا برادرن دو تا عالم همتی هم هم. هیچ هیچکدوم به دیگری ترجیح نداره اما امکان حفظ یکی بیشتره یا حفظ یکی دیگه صدقت داره یا قد... قدرت در حفظ یکی تقدیم در واقع حفظ اون دو تکلیف حفظ موردی که قدرت در اون قدرت در اون عقلی است تقدیم حفظ موردی که قدرت در اون عقلی است بر موردی که قدرت در اون واجب در اون واجب شرعی است خب با چه این تقدمش چیه شرعی بودن به چیه؟ این یه بحث مستقلی نیست در واقع وجوب شرعی، قدرت در وجوب شرعی و عقلی گواهی به به صورت‌های مختلف لحاظ میشه. و میان علمای تفاوت نگاه‌های وجود داره. به چه صورت؟ یکی این که لحاظ قدرت برای استیفای ملاک برای استی برای استیفای ملاک در مقام امتثال این مورد امتثال اما قبل از اون هم جا داره لحاظ قدرت بکنیم در مقام در واقع بگیم اتصاف در مقام اتصاف به ملاک در خلاصه لحاظ قدرت در اتصاف به ملاک در مقام جعل خب اینجا اگر باشه این میشه چی؟ میشه قدرت شرعی قدرت شرعی کجاست؟ طبق یک نگاه دیدگاه های مختلفی وجود داره خب از آن جمله اینا چی در واقع این موارد اینه. لحاظ قدرت در اتصاف به ملاک در مقام جهل اینه نگاه نگاه دوم چیه؟ استیفای ملاک نیست استس... اتصاف به ملاک نیست استیفای ملاک تحقق تحقق بخشی به اون در مقام امتصال خب حالا در مواردی که قدرت اینجا عقلی باشه در نتیجه اگر قدرت بر میشه بگیم که قدرت برای حفظ جان همه انسان ها در واقع میتونه به صورت عقلی لحاظ شه اینکه قدرت هست اما در برخی از موارد چه واسه به توانه حفظه در واقع قدرت برای امتصال این تکلیف رو توسط شر سراغ گرفت یه بیان دیگه هم کنیم غیر از این اتصاف به ملاک استیفای ملاک اون چیه؟ این که در واقع یک شیوه دیگر برای تشخیص و تمییز قدرت شرعی از قدرت عقلی شناسایی این در لسان دلیل اشاره در واقع وجود یا بگیم لحاظ و لحاظ لسان دلیل لسان قدرت در لسان دلیل قدرت و تمکن در لسان دلیل چون که یه نکته دیگر اینجا داریم چنان که گاه عدم توانمندی و تمکن در لسان دلیل عقص شده است در موارد این گونه است در این موارد ما چه کار ممکنه بکنیم در این موارد می توان چه بس بتوان قدرت رو در صورت مقابل اون شرط دانست خب اینم یه نکته است پس در حال اینجا ما الان یه دو تا تذکر دو سه تا مورد داریم پس در واقع ما از کجا شروع کردیم بحث پیشورس ها بود یه بحث قدرت رو چند تا چهار تا پیشورس مطرح کردیم در این میان این تذکر رو هم دادیم در واقع به عنوان مفهوم و مفهوم و ماهیت بگیم بلکه ماهیت قدرت شرعی و عقلی این یک مقوله مهمه جزء مبادی بحث ماست که این چگونه قابل طرح است خب در نتیجه اینجا ما در حفظ بین بحث ما بحث ما از کجا شروع شد بحث حفظ جان بود گفتیم یک فرضش تضاهم بین نفس با عقل نفس با آب روز یک بحث هم تضاهم بین چیه؟ دو تا نفسه کدام رو ملاق قرار بدیم فرصهای مختلف داریم اگر برابر باشند تخییر اگر نابرابر باشن طویتا اون وجه اون موردی که نه احترام بیشتری داره یا ملاق های اصولی اینها رو ما باید در نظر بگیریم معانی قدرت رو کم ما در نظر گرفتیم در باب تظهم این هم یک بحث در واقع مفهوم شناسی و ماهیت شناسی بود که ما اینجا ببینیم به چه معنا مراد هست. پیشوررز ما هم که روشن شد. با این بیان یه مقداری می توانیم بگیم منطق کار هم یه کمی روشن شد. در واقع سرفا ما پیشور رو بیان نکردیم. پیشور های در واقع ترجیح پیشور ها و وجود ترجیح یک نفس بر دیگری بود بنابراین دیدیم که در مقایسه خلاصه دو نفس میتوان با کمک پیشفرس ها پیشفرس های مربوط به این بس مربوط به تزاهم تزاهم حفظ دو نفس به وجوه ترجیح پیبرد به وجوه ترجیح چی بگیم حداقل سبوتی بحث اثباتی خب می توانیم روایت ما اینجا الان در بحث که معمولا داشتیم وجوه ترجیح سبوتی و موضوع شناسانه رو در واقع مطرح کردیم با زاویه دید موضوع شناسانه خلاصه مورد و قرار دادیم وجود ترجیه سبوتی و الله هر کدام از اینها میتوانه در آیات روایت متعددی محل بحث قرار بگه اختزایت اینها رو ما لحاظ بکنیم که بحث ضروری و مهم است. خب اینجا مصادیقی رو هم که جلسه قبلی که حفظ جان مادر با حفظ جان جنین رو مطرح کردیم خب اینجا در واقع این وچه اتفاق در یک صورت چی بود نکتهش این بود که چرا که نفس در واقع جان مادر از احترام بیشتری برخوردار است نفس مادر در تلقی شرعی در مزامین شرعی از احترام بیشتری برخوردار است خب طبیعتا شما باید انتظار داشته باشید ما در بحث مستقلی بتوانیم و به ضرورت داره بدیم خب این مورد رو در مواصفیقی ثابت کنیم بلکه سایر موارد پس ما اینجا بحث رو بردیم سر چی اکثر و احتراماً بر این اساس اسبات خلاصه این دو پیشفرض اینجا میگیریم در واقع بیشتر بودن احترام مادر نسبت به جنین در اینجا به عنوان یک پیشفرض خلاصه لحاظ شده لحاظ میشه به چه معنا؟ در واقع میخوام بگم حواسمون هست نگید از بحث فرار کردید یا انجام مصادره کردید؟ ما مصادره نمیخوایم کنیم اینو بعد چون که بحث ریز دنبال مفصلی میتوانه باشه این رو دیگه جای دیگه بحث بکنیم در واقع به خاطر در واقع اینکه نیاز به کسرت تأممل داره کسرت بحث داره جلسات و حجم بیشتری خلاص نیاز داره به خاطر زیقه خلاص محدودیت بحث بناچار اینجا در این مورد خلاصه بیشتر بودن رو ما باید به عنوان یک پیشفرض میگیریم که جای دیگه باید مورد تعمل بحثای فقی قرار بده. خب حال اینجا از اینجا ما یک نتیجه فقه سیاسهی بگیریم تره. پس یک مصداق از این مصادیق ساده بود مصادیق متعدد دیگر هم می توانیم پیدا کنیم در واقع حفظ جان بگیم نفوس با احترام بیشتر می توانند مصادیق متنوعی داشته باشند درسته این مورد از اون موارد خاص بود اما تو موارد در واقع دیگه در واقع باید بگردیم مواید سیاسی رو ترجیح بدیم ما در اینجا میعیار و نگاهمون چیه؟ این که با مهوریت احترام مقبول و شاخص و نصاب احترام و میزان و عکس و کسرت مقایسه ای و موازنه اکثریت اکثر بودن بیشتر بودن احترام می توانیم در واقع یک نگاه عام داشته باشیم نصاب بیشتر بودن احترام در میان نفوس می تواند به عنوان قاعدهای کلی مطرح شود اما این قاعده کلی بودن یعنی چی؟ در نتیجه میتوان خلاصه مسادیق متنوعی داشته باشه مسادیق متنوعی برای خلاصه تقدیم نفوس با احترام بیشتر به عنوان قاعده این الان شد خودش یه قاعده چرا چون مصادیق بیشتر داره این مصادیق متنوعی خلاصه برای اون خلاصه سراغ گرفت اما یه مصداق برجسته چیه ما بیایم بگیم که آقا مثلا حالا یه نکته هم اینجا اضافه کنیم یک جایی از اون موارد زمیمه از اون موارد کسرت و تعدد نفوس هم میتوانه مطرح بشه از اون مسادقه در واقع وجوه ترجیح فرعی اینجا وچه ترجیح اصلی ما شد چی؟ نعیار در واقع یکی تخییر بود یکی خلاصه ترجیح به اهمیت ترجیح اهمیت ممکنه یه مورد رو هم پیدا اضافه کنیم عنوان خلاصه میارهای فردی خب این عنوان در واقع وجوه ترجیه به خلاصه به غیر احترام خواهد بود وجوه ترجیح احترام اختضام میکنه که ما بتوانیم این وجوه دیگر رو در نظر بگیم لطفا پیام بدیم من کلاس وجوه غیر ترجیح به احترام چی بود پیشفرز ما این بود که ما میتوانیم خلاصه این رو در نظر بگیریم اما اینا میشن چی؟ مقوله فرعی خب بنابراین ما باید چه کار کنیم برابری احترام رو نادیده نگیریم بلکه باید چه کار کنیم اونها رو شناسایی کنیم خب یکی از موارد هم میتوانه کسرت نفوس باشه کسرت نفوس سه محترمه یعنی به این صورت که در یک فرض در واقع تقدیم موردی که مثلا شما دارید رانندگی بکنید میخوای تصادف کنید آیا بزنید به این پنج نفر یا به یک نفر طبیعتا کسرت نفوس میتوانه برای این مورد کمک بکنه در مواردی که خلاص سیانت جان یک نفر با سیانت جان چند نفر تزاهم میابد کسرت خلاص اون, تد اون افراد میتواند وجه ترجیح مستقلی محسوب شود حالا این رو هم به منو میتوانیم بگیم که به اون احترامه برگردانیم یعنی چه بسا اگر صرف تعداد و کسرت رو لحاظ کنیم در واقع نصاب ترجیح کمی خواهد بود کمی افراد خواهد بود اما اگر به مقوله احترام و تعدد نفوس محترمه توجه کنیم در واقع تقدیم افراد متعدد سیانت جان از افراد متعدد میتواند اقتضای کمی در واقع احترام محسوب شود این هم یه تبسر است در واقع این یه تحلیلیه در نتیجه خلاصه ما می توانیم قدرت رو برای حفظ جان عموم انسان ها در نظر بگیریم اما یه جاهایی یک موارد فری میان و این موارد فرعی رو ما می توانیم خلاصه قدرت اونها رو لحاظ کنیم این یک میار حفظ جان یکی از حل خب امکان خلاصه امکن و تحققن بگیریم که عرض کردیم این یه از اون میار فردی حفظ در واقع اسبق و زمانن بود در واقع میار خلاصه امکن و تحققن این یک معیار بود معیار دیگه چی بود اسبق و زمانن بود درسته تقدیم اسبق زمانن در جایی که ممکنه برابر باشن خب در واقع اینجا تو اون مورد ما الان دستمود رو نبستیم فقط اموردیم که آقا کدام امکان بیشتری داره کدام سبقت زمانی بیشتری داره یا تقدیم واجب با قدرت عقلی بر قدرت بر واجب با قدرت شرعی این یک میار مستقلی بود این لزومن به اهمیت بر نمیگرده. خب تقدیم کسرت نفوس اینم یک معیار فرعی مگر اینکه اون تفسیره رو قبول کنیم بگیم که در این صورت ما خلاصه ممکن اینو برگردانیم به خود اون وجوه تقدیم احترام کمی در این صورت خلاصه در این صورت این مورد از لوازم اون میار تقدیم اکثر و احترامنه اکثر و احترامن خب حالا این یه بحث پس شاخصه های فرعی شد که اینجا در مستقیابی ما دوچار مشکلاتی داریم خب مشکلاتی خواهیم بود از جمله یکی از پیش در بحث ما اینه که اکثر و احترامن رو باید ثابت کرد خب این یه بحث موردی دیگه طبعا اثبات, اثبات در واقع بیشتر بودن احترام یک نفس بر نسبت به در واقع نسبت به نفس دیگر نیازمند اثبات موردی خواهد بود خب. حالا ما این قسمت رو یه نکته می خواهیم کنیم و تو این بحث این رو در واقع بحث مهم تلقی کنیم اون چیه حفظ جان پیامبر آیا بر ما ترجیح نداره حفظ جان در واقع پیامبر احترام بیشتر نداره حفظ جان اوسیا پیامبران کل پیامبران و اوسیای آنان اینا چی هستن؟ اینها تقدیم دارن در واقع شرافت ذاتی پیامبران و به ویژه پیامبر اسلام و اوسیای اونها خلاصه نسبت به دیگر افراد مختزی احترام بیشتر آن نفوس محترم است خب یعنی در واقع این استدلال می توان یه استدلال عام باشه ادله مختلفی می توانند اثبات کننده شرافت ذاتی اون اون بزرگواران نسبت به خلاصه دیگر زوات باشه بنابراین اینجا اگر و شما دوران امر پیدا بشه بین حفظ جان و شما با جان یک پیامبر جان یک امام معصوم قطع بیشتره خب حالا به این سیاق این در واقع میتوانیم این رو به عنوان پیشفرز بگیریم میتوان خلاصه اس خلاصه برتری اونها رو نسبت به دیگران به عنوان پیشفرضی کلامی در این بحث خلاصه مورد استفاده قرار داد چون که این بحث مربوط به دانش کلامه خب این رو ما می توانیم جدا به صورت مستقل به بحث بذاریم ولی اینجا به عنوان ناچاریم به عنوان پیشفرز در نظر بگیریم خب اگر همینطور بیام جلو پس حفظ جان حفظ جان الو الو کلاس قد شده چرا من الان زنی زدی دیدم اسکی قد شد <تصفيق> الحمدلالو رب الالو